ال 2008 عزیز در یکی از ایمیل هایش نوشته بود، اتفاق های غیرمنتظره فقط وقتی میافتند که برای روبرو شدن با آنها آماده باشی اگر این طور باشد پس الا باید به نوعی، برای اتفاقاتی که این هفته افتاد، آماده شمرده میشد. حالان که دست و پایش را گم کرد، بدون آمادگی قافلگیر شد. چون این هفته عزیز زهارا یک دفعه برای دیدنش به بستان آمد. یک شب به شب بود. خانواده روبینشتای تازه دور میز شام نشسته بودند. که پیام کوتاهی برای تلفن همراه الا آمد با خودش گفت حتما یکی از کلوپ آشپزی فوزیون فرستاده برای همین نیازی ندید فوراً به سرش را با چیزهای دیگر گرم کرد بعد پا شد و غذا را سر میز آورد اردک اصلی سرخ شده کنارش سوته‌ی سیب زمینی، پلو یا سمن پسته ای با پیاز کارامل دار. اردک از بس خوشمنظره بود و اشتها آور به نظر می رسید، همین که روی میز گذاشتهش چشم همه گرد شد. حتی انگار اشتهای ژانت هم باز شد که آن روز صبح اسکات را با دوست دختر جدیدش دیده بود. و دچار بحران روحی شده بود. شامی آرام و معمولی بود. هر کسی از هر دری سخنی میگفت گفت. الا هم در صحبتها شرکت می کرد و نظری می داد. با پیشنهاد شوهرش که می گفت می خواهد حسار باخچه را بدهد آبی رنگ کنند مخالفتی نکرد. با جانت درباره حجم زیاد درس‌های دانشگاه حرف زد. با دو قلوها هم درباره فیلم دزدان دریایی کارائیب صحبت کرد. می‌خواست به دل همه راه پیدا کند. اما در اصل از همه دور بود. فکرش پیش عزیز بود. نامش به دستش رسیده؟ اگر رسیده پس از خاندنش چه فکری کرده؟ چرا تا حالا جواب نداده؟ وقتی داشت زرفهای کثیف را داخل ماشین زرفشوی میچید یا وقتی کرم برل با شکلات سفید را سرف میکرد ذهنش چنان مشغول بود که اصلاً به فکرش نرسید نگاهی به تلفن همراهش بیندازد. اما پس از همه اینها وقتی صندوق پیامهای کوتاه وارده را باز کرد از حیرت ماتش پرد. در بوستون هستم آمده ام برای موزه اسمیتسونیان عکس بگیرم اما اصلش برای دیدن تو آمدم در هتل اونیکس میمانم، میآیی به دیدنم عزیز گونه های الا سرخ شد، زربان قلبش تند شد، با دستان لرزان تلفن همراهش را بست و توی کیفش گذاشت. در حالی که سعی می کرد آرام به نظر برسد پشت میز نشست، همانطور که وانمود می کرد به حرفهای اعضای خانوادهش گوش میدهد، سرش کمی گیش می رفت. اما این حالتش از چشم دیوید پنهان نمانده بود. سرش را از روی بشقابش بلند کرد و پرسید چی شده؟ مسیج آمده؟ الا بیان که فکر بکند گفت آه بله میشله مسیج فرستاده. زن شوهر لحظه توی چشمهای هم زل زدم. نگاهشان در هم قفل شد. ده ها حرف بر زبان نیامده بینشان رد و بدل شد. زندگی های مشترک طولانی چون این فوایدی هم دارند. دیگر می بدون یک کلمه حرف فقط با نگاه دعوا کنند. به نظر میرسید بچهها متوجه چیزی نشدهاند. به این ترتیب الاو و دیوی دیدند به شکلی غریب وسط نوعی بازی هستند یکی میدانست دیگری دروغ میگوید و آن یکی هم میدانست که او این را میداند آخر سر دیوید غرق در فکر به پشتی صندلی تکیه داد دستمال سفرهش را با دقت کرد و با آن مربعی کامل ساخت حرکاتش کند شده بود زیر لب گفت آها پس میشله مسش فرستاده الا با آنکه میدانست شوهرش حرفهایش را ای هم باور نکرده حس کرد مجبور از داستانی را که سرهم کرده ادامه بدهد شاید هم در آن لحظه نیت اصلیش نقانع کردن شوهرش بود و نه فریب دادن بچه هایش. به این دروغ صرفاً برای خودش احتیاج داشت میخواست از خانه بیرون برود به هتلی که عزیز در آن میماند برود و سرانجام او را از نزدیک ببیند آن هم چه خواستنی در زندگیش هیچ چیز را اینقدر نخواسته بود برای همین خیلی سنجیده به حرفهایش ادامه داد. گفت گویا فردا در معسیسه انتشاراتی جلسه هست. میخواهند فهرست کتاب فصل آینده را مشخص کند. تو مسیجش این را خبر داد. میخواهد من هم توی جلسه شرکت کنم. دیوید با برقی نامفهوم در چشمانش گفت: «در این صورت جلسه مهمی است حتما باید بروی. اگر بخواهی خودم فردا صبح میرسانمت و با هم میرویم اگر چندتا از قرارهایم را جابجا جا کنم میتوانم وقتم را تنظیم کنم. نگاه الله بر شوهرش خیر ما. چه کار میخواست بکند؟ واقعا دلش میخواست همراهش به بستن برود؟ یا اینکه میخواست جلو بچه ها دووا را به زور لبخند زد؟ گفت: اینطوری خیلی خوب می اما صبح پیش از ساعت هفت باید از خانه بزنیم بیرون؟ میشله می پیش از جلسه با من جداگانه صحبت کند اورلی بی خبر از همه جا پوسخند زنان گفت "اوه، پس دور پدرم را خط بکش عمرن نمیتواند آنقدر زود بیدار شود در آن ساعت پدرم را فقط با جرسقیل می توانی بلند کنی دیوید هیچ وقت نتوانسته بود صبح زود بیدار شود هم بچه هایش، هم زنش این را خیلی خوب می‌دانستند. نگاه‌های الا و دیوید با هم تلاقی کرد. هر دو منتظر بودند و وضعیت را ارزیابی می‌کردند. یعنی چه کسی حمله را شروع می‌کرد تا که می‌خواستند به این بازی ادامه بدهند. یک دفعه دیوید با تبسمی تمسخرآمیز بر چهره عقب کشید و گفت: حق با لیست، آن ساعت نمیتوانم بیدار شوم بهتر است خودت تنها بروی. ژانت هم بیخبر از همه جا گفت. خب چرا الان نمیروی مادر؟ توی آپارتمانمان در شهر بمان. راستش خیلی وقت است به درد کسی نخورده. اینطوری طوری صبح سرحال و بدون خستگی میتوانی توی جلسه شرکت کنی. الا در حالی که حس می کرد، گونه هایش می سوزد گفت، آره می شود. فکر این که صبح فردا به بوستون برود و با عزیز صبحانه بخورد، باعث شده بود زربان قلبش تند شود. آن وقت همین الان براه افتادن و رفتن به نظر دیوانگی می رسید. از طرف دیگر میخواست عزیز را فورا ببیند نه روز بعد تا صبح خیلی مانده بود انگار یک عمر اگر همین الان میرفت بهتر نبود از خانه تا بوستون با ماشین دو ساعت راه بود اما برایش مهم نبود عزیز از آمستردام به آن دوری پا شده و آمده بود آن وقت دو ساعت رانندگی مگر چیزی بود. الا حرفش را ادامه داد. گفت اگر الان راه بیفتم قبل از ساعت ده به بستون میرسم. فردا هم صبح زود به انتشاراتی میروم و میشله را میبینم. رنگ از رخ دیوید پرید. کلمه ای حرف نزد. در چشمهایش حالت بیخیالی بود که نشان می‌داد نمی‌تواند جلوه ملاقات زنش با مردی دیگر را بگیرد. الا گفت: تازه خیلی وقت است آپارتمانمان را جمع و جور نکردم. بروم سری بزنم. روی جمله آخر عمدن تاکید کرده بود. اینطوری می‌خواست به شوهرش بفهماند که با عزیز صرفاً چیزی می‌خورند و بعد خودش تنها به آپارتمان میرود و میخوابد. دیوید لیوان به دست از پشت میز بلند شد. با اعتماد به نفسی که مشکل می‌شد از آن سر درآورد گفت: فکر خوبی است. باشد عزیزم. الان برو. می‌خواست مشش را بگیرد یا اینکه برایش اهمیتی نداشت الا نفهمید شوهرش چه فکری توی کلش است ایوی ناله کنان گفت اما مادر آخر گفته بودی توی تکالیف ریاضی کمکم می کنی پیش از آن که الا فرصت حرف زدن پیدا کند اورلی جواب برادرش را داد ای بچه ننه بنشین تمرین‌های خودت را خودت حل کن. گوساله گنده. همانطور که که بچه‌ها جر و بحث می‌کردند، الا با قدم‌های تند به طبقه بالا رفت. همین که در اتاق خواب را بست، جواب عزیز را نوشت. چه سورپرایز قشنگی! خیلی غافلگیر شدم. دو ساعت دیگر در هتل اونیکس هستم. دکمه سند را فشار داد. با چشمهای مبهوت رفتن پیام کوتاه را تماشا کرد. چه کار داشت می کرد؟ این را به کجا می رسید؟ آن موقع وقت نداشت به این چیزها فکر کند. اگر بعدها از کارهایی که امشب کرده پشیمان بشود، که احتمالاً می شود همان موقع افسوسش را می خورد. فعلا کاری را کرد که باید میکرد. باید عجله میکرد. در عرض 20 دقیقه دوش گرفت. با سشوار موهایش را خشک کرد. دندانهایش را مسواک زد. یک لباس انتخاب کرد. پوشید و درش آورد. یکی دیگر را امتحان کرد. این را هم نپسندید. تصمیم گرفت لباسی دیگر تنش کند. موهایش را شانه کرد. آرایش مختصری کرد. گوشواره یشمی هدیه مادر بزرگش را به گوش کرد. توی آینه خودش را برانداز کرد. چیزی را که می نپسندید. رفت و لباس دیگری پوشید. نفسی امیخ کشید. کمی عطر زد. اترنیت. کلوین کلاین. ته عطر به کف کابینت حمام چسبیده بود. دیوید از عطر خوشش نمی آمد. همیشه می گفت. زن باید بوی زن بدهد. نبوی وانیل یا پاپایا اما مردهای اروپایی ممکن بود درباره عطر نظر دیگری داشته باشند مگر اطر در اروپا پرطرفدار نیست حالا چرا عزیز از قبل خبر نداده بود که می آید؟ اگر از قبل خبر داشت به خاطر او خودش را درست میکرد آرایشگاه میرفت. مانیکور می کرد. حتی کسی چه میداند شاید مدل مویش را عوض میکرد کلی سوال در ذهن الله چشمک میزد. اگر عزیز مرا نپسندد آن وقت چه؟ اگر اخلاقمان با هم جور نباشد اگر پشیمان بشود از اینکه این همه راه تا بوستون آمده نام نگاری آسانتر بود. ملاقات سخت است. چرا آمده؟ من دعوتش کردم. با نوشتن آن نامه باعث شدم اینجا بیاید. از افکارش خلاص شد. خودش را جمع و جور کرد. مثلا برای چه سعی می کرد نظرش را عوض کند. اگر اخلاقشان جور بود چه می اگر جور نبود چه میشد؟ قرار بود با این مرد فقط فنجانی قهوه بخورد. همین و بس قرار نبود جلوتر برود. نمی توانست جلوتر برود. ارتباطش با ظهارا موقتی بود. گذرا بود. در حد دوستی ساده بود. آخر خانواده داشت. خانه و زندگی داشت. گذشته اش اینجا بود آینده اش هم. از دست خودش عصبانی شد که توی این سن و سال چه فکرهای غیر ممکنی می کند. سعی کرد فکر نکند، خیال نکند، آرزو نکند. ساعت یک رو به هشت، الا بچه را بوسید و همه شب خیر گفت و از خانه بیرون آمد. دیوید به اتاق کارش رفته بود. همدیگر را ندیدم. همانطور که دست کلید آپارتمانشان در بستن را در هوا تکان می داد و به طرف ماشین می رفت، ذهنش انگار فلج شده بود. اما دلش چهار نر می تا.